بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصراط والسلام على أشرف الأنبياء سيد المرسلين وآله وصحبه أجمعين أما بعد أنجمين دعاء دعاء السفتح رسول الله صلى الله عليه وسلم در نماز كدعاء نماز تهجد إن دعاء رمي خندان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد انگامی که به نماز شب و نماز تهجد بیدار می‌شد رسول الله صلی الله علیه و سلم چنین دعا می‌کردند در روایتی در حاشیه نوشته شده ان رسول كان صلی الله علیه و سلم كان في التهجد يقول بعد ما يقول الله اکبر بعد از این که الله اکبر می‌گفت این دعا را می‌خوندند اللهم لك الحمد و أن تقيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاءك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق محمد حق والساعة حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاخفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بالله إن حديث هم دار بخاري ومده هم دار مسلم هذا حديث صحيح ياس كبارت شده وخلاصة وشكيدة ياسم بحث حقيدة ياسم كما دار كتابي يعتقدم وميخوني إن دعا شامل بسدو جمله هاسم دو جمله هست از جملاتی که ما باید از لحاظ اعتقادی بیاموزیم معانیشو رو درک بکنیم مفهومش رو بیابیم خصوصا این که انسان در نصف شب در وقت تحجد وقتی که بیدار میشه با دلی حاضر دلی صاف این ورد را از ته دل میخونه یک اثر خاص خودش داره مثل نماز فرض نیست که دوان دوان میخوایی فقط بیای به نماز برسی و از سر بندازی و قول بعضی ها نه از دل بلند شدی و این دعا را از ته دل میخونی اللهم لك الحمد و انت قیم السماوات والام در روایت قیام السماوات والام از جایگاه والای این ورد و این دعا داره که رسول صلی الله علیه وسلم به هنگام تحجدش در نماز تهجد این کلمات را ذکر میکردن و میگفتند. بدون شک این دعا محل استجابته خصوصا در وقت تهجد یک سوم آخر شب که الله جل شانه به آسمان دنیا میاد و میگوید هل من داعن فاستجیبو له آیا کسی هست دعا بکنه استجابت بکنم دعایش و هل من مستغفرن فاستغفرو له استغفار بکنه استغفارش رو بپذیرم فخفر لی انواع توسل در این دعا داریم انواع اقرار به بزرگی الله جل شانه ملکش قیومیتش انواع توسل ما داریم اسما و صفاتش تا اونجا که میرسیم به انتهای دعا فغفر لی بار الله ها مرا ببخش بیاموس هل من مستغفرن فاستغفر الله میگه کسی از استغفار بگه نمازت با استغفار شده شد؟ الله اکبر این عبودیت بندگیه این چیزی که الله از بندگانش میخواد این دعاها ها اجتهادی نیست که ما از خودمون بی افزایی اضافه بکنیم کم بکنیم نه اینها توقیفیه اینا شرع الهیه اینها دینه این کلماتی که خونده میشه این 22 کلمه‌ای که در این عبارتی که در این حدیث اومده در دعای استفتا رسول الله صلی الله علیه و اسلام دین ماست مجرد یک سخن نیست بلکه اعتقاد دینه دینی که ما باید به تک تک جملاتش باور داشته باشیم تک تک جملاتی که در این حدیث اومده و نباید مجرد سر زبانی باشه یعنی فقط بر سر زبان تکرارش بکنیم نه بلکه به معانیش فکر بزنیم معانیش وقتی گفته میشه بدونیم که چی داریم میگیم در اون نصف شب اینم به خاطر حفظ ایمان ایمان نیاز به داره این اهمیت بحث اعتقاده ما بحث اعتقادی بود هی تکرار بشه از عظمت الله از اسم و صفاتش از عبودیت و الوهیتش باید تکرار بشه سوس میشیم رمضان رفت یک هفته، دو هفته انسان خودش رو نگه برای تحجدش برای فراحت قرآنش کم کم سوس میشه، سوس میشه این نیاز به معاهده داره، نیاز به استحکام داره اگر میخوای محکمش بکنی اون عبادتت، اون نیایشت اون نزدیکیت به الله چنانچه در رمزان به الله نزدیک بودی نیازه که به معانی دعاهای نبوی دقت بکنی و روش فکر بزنیم اینا ها به قلبت گره بخوره مسائل اعتقادی وقتی که ضعیف میشه اعتقاد وقتی که بحث مثلا آن تو این حدیث بحث بهش داریم و ساعتو حق و آخرت حق و حق و النار حق و النبیون حق چرا هی باید تکرار بکنیم رسول سرسانون هی تکرار میکنه اونم در نصف آخر شب چرا رسول داره را تکرار میکنه اهمیت بحث اعتقاد همیت این باور ها هست این باورها باید روی قلب ما حق بشه، باید تکرار بشه که روی قلب ما جا بگیره. همیشه به جهنم جلوی چشممون باشه، همیشه جهنم جلوی چشممون باشه نزدیک نشیم، نزدیک جهنم نشیم. هر عملی که ما را در جهنم بندازه ازش دوری بپرزیم. باید این کلمات گفته بشه و نار و حق، جهنم حقا شوخی بردار نیست و نار و حق. رسول الله صلی الله علیه و آله مقامش که گناهانش الله بخشیده، آمرزیده، بلند میشه در آخر شب میگه فغفر لی مرا ببخش مرا بیامرز اگر رسول الله صلی و حدیثم خودش رو محتاج مغفرت و آمرزش میبینه خزبا به نتو محتاجیم بلکه به شدت محتاجیم که الله مرا ببخشه و بیامرزه در مقابل کیوتهی همون کاستیمون ایمان کهنه میشه در قلبها پوسیده میشه در قلبها إيمان بغاية بشه بشي إن كلماتك إيمان را تجديد ميكونا رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرميان إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب كما يخلق الثوب الخلق فاسأل الله عن يجدد الإيمان في قلوبكم أصلا الله بخالك إيمانة تجديد بشي إيمانات كهنمشة مثل لباس و لباس و تقوى ذلك خیل لباس و جامعه پوشش قلب اولاتره که تو بهش همیت بدی به زیباییش به قشنگیش به درستیش به تمیزیش و پاکی و پاکیزگیش و لباس و تقوى. لباس تقوى جامعه تقوا جامعه قلبت باید بهش همیت بدی و در رویت دیگر فتل القرآن یو جدد الایمان فی قلوب قرآن بخونید قرآن و تدبر تا اینکه ایمان در قلبتون ایمان در قلبتون تجدید بشه عمر خطاب رضی الله عنه اصحاب را جمع میکرد میگفت الا من بن نزداد ایمانه میگه ایمانمون زیاد بکنیم با خوندن و تلاوت قرآن بس ایمان نیاز به تجدید داره ایمان نیاز به شکوفایی داره شکوفایی ایمان با علم با علم علم صحیح علم درست خوندن سخنان این و اون به دردمون نمیخوره نه که به دردمون نمیخوره سخنان هر کسی قابلیت هم قبولیت و هم مردودیت رو داره ولی سخنان رسول الله صلی الله علیه و سلام حقه کلن یوخذ من قوله و یورد الا صاحب هذا القبر جناجه من رحمه الله میگه هر کسی شاید سخنش درست باشه شاید نادرست الا رسول الله صلی الله علیه و سبحانهش علیه الصلاه و السلام حقه و کلماتی که گفتن حق بوده از جانب الهی بوده چون الله او را برناحق اقرار نمیکنه چنانچه من بارها گفتم بازم میگه از یک اخم رسول الله صلی الله گذشت و آله الله گزاش نمی کنه و ان جاءه نمیبینه اخم رسول الله صلی الله و اون در هم کشیدگی چهره رسول الله صلی الله و نمایان نیست برای اون نابینان نمیبینه کور ولیکن با این وجود الله سرزنشش میکنه میگه ن حق نداری در چهره مؤمن اخم کنی چهره رو در هم بکشی ابس و تولا ان جاءه الله از یک اخم گزاش نمیکنه از سخنانی انه حق باشه گذشت میکنه نه و الله اقرار بر نو حق هرگز نمیکنه خصوصا اون پیغمبری که در مقام نبوت و پیغمبری و پیاموری از طرف الله واقع شده اومده که به ما وحی الهی را ابلاغ بکنه انه لا ينتق عن الهوا ان هو الا وحی یوحا وحي يوحي سخنان الرسول صلى الله عليه وسلم از روی هوای نفسش نیست از بل خودش نیست طرف الله جل شانه امام مجری رحمه الله مجيات در بحث این دعاها خصوصا در کتاب فضل قيام اللیل ما که شرح دادیم و توصیه می حتما گوشش بدید باب شريف حسن لمن وفقه الله يسير على من يسره الله وله له توفیق هم به تجودی هم این دعاها را یاد کردند ينبغي لمن كان لا يحظى من قيام الله أن يحفظ هذا ان دعارا حفظ بكوناً كسي كي بتهجد ميسى وإنما أحثه على حفظ اليس عمله حفظ بكوناك إن دعارا بخونه در نماز الشبش هرشان كده رسك در نماز الفرزشان بخونه لأن دعاة صلى الله عليه وسلم نمازش رو تشنين آغاز ميكاده مانعي نيسى لذين كدر نماز الفرزم قفته بشه وكذا ينبغي لكل مسلم أن يحفظه ممن لا حظ له في قيام الله حتى تهجدنا من إيسا مكبوات حفزش بكنا فيدعو به رجاء أن يوفقه مولاه الكريم بقيام الليل إن شاء الله تعالى حفز بكون شوال الله توفيق بش بده نماز تهجد بإيسا ببركة إن دعاء إن دعائك رسول الله صلى الله عليه وسلم ميخوندان دار نمازايش ونخصان نماز الشاب اللهم لك الحمد أن تيم السماوات والأرض وما فيهن شاد دي كان جواب جواب واشا دار دعاء ألفاظ مختلفة ومده شوال دعاء فاسو في شي باشي بلي خب و مشترک اونجایی که نیاز باشه اون اختلافات جزئی رو خواهیم گفت اللهم لك الحمد و انت تقيم السماوات والارض ومن فيهن این مناجات این نیایش را رسول الله صلی الله علیه وسلم با حمد و ستایش الهی یعنی با درود و یاد نیک بر الله نمازش را آغاز میکنه رسول الله صلی الله علیه و ابراز محبت کسی حمد و ستایش را به جا میاره، که اون کسی که او را می ستایه، دوستش داشته باشه و در قلبش بزرگ و عظیم باشه. الله اکبر. با وصف بزرگی الله نماز شروع میشه. جلوه چشمش الله بزرگه که به تعظیم اون معبودش به نماز میسته و همه چیز را بر خودش حرام میکنه. میگه الله اکبر این لفظ بر زبان میاره و اقرار میکنه. این عبودیت و بندگی و این تزلل هدف از عبادتینه. ذلتت را به درگاه الهی اقرار بکنی، بندگیت نیازت حاجتت اقرار بکنی به درگاه الهی و اون اقرار بعد از اون تکبیر که سرچشمه از ترسته به درگاه الهی ترس از قیامت و حساب و کتاب ترست از خشم الهی سبب شده که اینچنین او را تعظیم بکنی بگی الله اکبر سپس همراه اون تعظیم او را با محبت یاد بکنی و بستایی بهی بار الله تمامی خوبی ها از سوی توست اگر بدی رخ میده اگر شرقی هست از ما مخلوقات از جانب تو نیست چنانچه در دعای وجه داشتیم والخير و كله بیدیک و شر ليس الیک ای این معنای حمد این حمده. حمده یعنی حمد حمد یعنی باره الله ها. هر چی از سوی توست خوش و خوب و نیک و درست این حمد رسول الله صلی الله علیه و با این یاد نیک از الله جل شانه نمازش را آغاز میکنه اللهم لك الحمد انت قیم السماوات و الارض و من فیهن الان من در باری چون قبلا شرح دادم توضیح دادم دیگه زیاد توضیحش نمیدم بحث حمد در الحمدلله در اولین زید الحمدلله کثیران اونجا مفصل من توضیحاتی که لازم بوده گفتم نیاز نیست که دیگه تکرار بکنم به هزباب تذکر و یادآوری بدونیم که حمدمون سبب رضایت الهیه حمد حمد و سپاس و ستایش ما حمدی که همراه شکره مجرد ستایش نیست بلکه همراش رضایت و خوشنودی در مقابل صفات و افعال الهیه اون چیزی که ما در زندگی روزمره خودمون میبینیم و اون قسمتی که روزیمون کرده است نان و آب و صحت و سلامتی هر چیزی که داریم از الله داریم عبرازه إين سبب مشي ك الله هزم رازي وش؟ رضايات ما نسبت به الله سبب رضاياته خشندية الله هزم ما مش من نسبته ما مش الصلاة صلى الله عليه وسلم يفirma إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكل فيحمده عليها إن الله لا يرضى عن العط الله رزي مش هذبندية خشندية مش هذش بخور غزة اللقمة ده داردهانش بزاره والله را حمد سطايش بيجي فيحمده عليها او يشرب الشرب فيحمده عليها يعني. اوبی مینوشه در مقابلش بگه الحمدلله الله ازش راضی و خوشنود میشه فضیلت مقام شکر و سپاس الهی و ستایشش و حمدش و ما بكم من نعمه فمن الله هر نعمتی ماز الله دارین و انت عدو نعمت الله لا تحصوها نعمتي الله بسیارا نمیتونیم بشماریم ولی گاهی گناه بر قلب ما چیره میشه و ما را در کفران میاندازه اون گناه اون معصیت اون تاریکی دچار کفران نعمت میشه ما بدبختیم ارزش پولمون فلان، رئیسمون، فرماندارمون، استاندارمون همیشه هم مغم دنیا شده در مجالس هر جامیری میری غیر از کفران نعمت و بدگویی زمان و زمانه و افراد و اشخاص غیر از غصه دنیا و هم مغم دنیا چیز دیگه از زبان مردم نمیشنوی یادنی که از دنیا نیست همه لب تر میکنن به بدی از زمانه شون، از روزیشون، از بدبختیشون، از خاریشون این مخالفت داره در تضاد با مقام حمد و ستایش با مقام عبودیت و بندگی انسان باید هر چیزی که از الله میبینه بر خودش خوش میبینه الله چینی لیاقتش کرده اگر ناچیز ترین و ارزان ترین موتوری وسیله ماشینی هر وسیله نقلیه که بخواد باشه دو چرخه داره. الله را در مقابل اون سفاس گذار بگو الحمدلله که اینو روزیم کردی و لایق من رو دونسی تو مننت بر سلال الله نداری چرا طلبکاری همیشه به درگاه الهی که باید بهترین ها به تو بده و برای الله تا این تکلیف بکنی لا يسألو عما يفعل و هم يسألون. لا يسألو عما یفعل الله در مقابل فعلش سوال نمیشه چرا به این دادی چرا به اون ندادی چرا فلان ماشین فلان جایگاه فلان مقام روزی فقط وسیله و منزل نیست جایی مقامه جای پست جای همسر جای فرزنده چرا به این دادی پسر چرا به من دادی دختر چرا به اون دادی دو تا همسر چرا به این دادی یکی همسر هر چیزی ماشین یکی دو تا داره یکی ده تا داره یکی نداره اصلا الله ملک از آن خودشه به هر کسی هر چیزی بخواد میده ما نمیتونیم الله را زیر سال بریم اون کسی الله را زیر میبره که حسوده. اگر در نفس خودت دیری که ایرادی داری بر فردی چرا اون داره چرا من ندارم بدون که تو حسودی بدون که تو حسودی و شر حسود مؤمن به الله بنا میبره و مکلفه الله تکلیفش کرده در قران من شر حاسد اذا حسد شر حسود واد الله بنا میبری حسادت شر حسادت عمل شیطان حسادت شبب شد که ابلیس در انحراف و گمروهی بیفته که چرا من سجده بکنم به کسی که از گلا فریده شده آتش بهتره حسادت ورزید چرا این مقام و جایگاه را الله به آدم میده حسادت می در مقابل مقام جای در مقابل مقام جای در مقابل مال جای در مقابل وسیله است جای در مقابل همسر جای در مقابل فرزنده جای در مقابل شکل و قیافه است جای در مقابل قد و قواره است و زیبایی جای در مقابل زیبایی خط حسادت حق حسادت وجود داره نمیتونیم نفیش بکنیم وجود داره بدترین نوع حسادت این بر زبان بیاره حسان بر زبان بیاره تمع بکنه در مال دیگری تو خدا به تو داده باید به من بدی چرا باید بهت بده الله این روزیش کرده این قد خونه این قد منزل این قد وسیله این قد مال شخص مکلفه در مقابل زکات دادنش مکلف نیست در مقابل اینکه رو در اختیارات قرار بده این تمع تو حسادته تمع تو در مال دیگران حسادته بس این تکرار حمد این حسادته رو از بین میاره این تکرار حمد الحمد رب العالمین سوره طرف داي استفتاحت که نماز خوندم شه ي طرف الحمد ستایش الله بر هر آن چیزی که به ما داده ما را لایق دونست اينقدر به ما داده الله بار الله رازي ام به اون چيزي که قسمتام گرديد زياده نیستی رسول الله صلي الله عليه و ما قدر نعمت ها را بدونيم به ما ياداوري ميکنه میگه ميفرماين اگر میخواهی قدر نعمت را بدونی, بدونی نگاه زیر دست خود بكن نه بالا دستت نه اون کسی که نداره اصلاً تا قدر نعمت را بدوني چون انسان در ازرا و در نکوهشو در خاری واقع میشه خودشو خار میبینه زلیل میبینه وقتی که چشم به بالاتر از خودش داره به بالاتر خودش نگاه میکنه سری بیم ما را سام کسی کلیه نداره ببین کسی که نابینا است اون کسی که انواع مریضی و درد داره مبتلا است بگو الحمدلله الله دی عافانه ممبتلا که بیه توعی معافات بگو شکر و سفاس الله را بگو در مقابل این تنی که در اختیارت قرار داده خیلی بده یعنی که انسان ناسفاس باشه در مقابل الله نعمة إلهي بششمش نيات إن صفات وخسلت إبليسية إن إبليس صفاتية الله نفوس مرة پاق بقنا أز إن شر وبدی أن قيم السماوات والأرض أن قيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم الله زنده هس حية. الله كيف هميشه زنده هس إنك ميت وإنهم ميتون همه بعد بميران شه پیغمبرش غير پیغمبرش حتى شهداش اگر شهدان مميران بس چرا الله گویا لا تقول لمن يقتل في سبيل الله اموات نگید که اونها مردن چرا گفت اونها نمردن گفتن مردن یا گفت نگید بهشون اموات نگفت که الله جل شانو نگید اونها که اینها نمیرن یا مرگ نصیبشون نمیشه نا. نه اسم و نامشون نذارید مرده چرا اسم و نامش نذارید مرده اموات ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله اموات دو جا از قرآن یاداوری میکنه الله بحث شهدا خدا الله جل شانه این رو بگه کنها مردن نه اینکه نفی مردن رو از اونها بکنه که اصلاً نمردن نه, نه چون همه باید بمیرن همه میمیرن اگر رسول الله صلی اللہ علی سلم الله علیه و الله دربارش بگه اینکه میت تو میتی میمیری و این هم میتون و همه هم باید بمیرن میمیرن شهدا جز از اونان دیگه ولی مرگ اونها با مرگ دیگران متفاوته ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله و نجد که اونها مردن مثل بقیه مردگان. مردنشون چه تفاوتی داره با دیگر مرده ها؟ بل احیاء عند ربیم زنده نزد الله جل شانه تفاوته؟ مرگ شهده با مرگ دیگران قرب و نزدیکی با الله جل شانه ها داره نه اینکه اصل مردن را از اونها نفت بگه اصلا نمیمیرن چون اثبات مردن را به اونها کرده در جای دیگر از قرآن چون اثبات مردن شده پس این مردنی که دیگری از اشون شده مردن دیگری مردن مثل بقیه. یک مزیتی دارن شهدا از مزیتاشو در حدیث اومده که دوچار فتنه قبل نمیشن اون کسی که در جنگ شهید میشه کفا به بارقه سیوف لهم فتنه دیگه دوچار فتنه قبل نمیشن دیگه برق شمشیر براشون به عنوان فتنه کفایت میکنه اینها امتحانشون رو پس دادن در دنیا کافیه براشون دیگه دوچار اون فتنه منکر و نکر نمیشن سوال منکر و نکر پس این مزیتیه هست که شهدا دارن همه باید بمیرن جز الله جل شانه. كله من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام انت قيم السماوات والارض الله لا اله الا هو الحي القيوم قيوم يعني قائم بشؤون منوتوست نيگ شؤون منو تو. شؤون آسمان، شؤون زمین و شؤون هر کسی که ما بین و زمین و بر روی زمین و اسمان قائم به امر منوتوست شؤون زندگی منوتو رو در الله میچرخونه نوشته که چقدر آب بنوشی نوشته که این آب از کجا بیاد کی برات بیاره روزید است چه جهتی باشه؟ چقدر اون فرشته باران برای تو باران ببارونه نه که برای تو برای اونمور چش برای اون حیوانش؟ این قیومیت الهیه تدبیر شؤون زندگی من و تو الله که زندگی من و تو داره میچرخونه من و تو که چیزی نیستیم اون حیوانش اون فرشته هست اون جنش تک تک ستارگانی که در اون فضا فکر می‌کنی رها شدن خیر والله الله رها شد نکرده بلکه الله نگهشون داشته و ما یمسکهونه الرحمن اون پرنده که در آسمان پرواز میکنه اون ماهی که در دریاست تک امور اون حیواناتی که بر روی زبین و درون در در دریه ها هستن که شنام میکنن تک تک امورشون رو الله تدویر میکنه والله خیلی عظیم انسان وقتی که به این معانی فکر بزنه به این معانی از این صفت الهی فکر بزنه حالا اینجا قیوم داریم، بعد نور داریم، بعد ملک داریم تک تک این ستا وصفی که اقرار با اون در این دعا اومده تأثیر خاصی در ایمان ما و در تغذیه ایمانی ما داره الله قیومه وعنت الوجوه للحی القیوم الله حی قیومه محتاج من و شما نیست محتاج هیچ ای نیست هیچ مخلوقی نیست همه محتاجشن همه نیازمندشن ولی اوبی نیاز قیومه شون همه رو تدبیر میکنه. همه محتاجن که الله امور زندگیشون رو تدبیر بکنه ولی الله محتاج کسی نیست قیومه این وصف الهی و با این اسم القیوم که این قیم بودن الله قائم بودن به امور مخلوقات ازش برداشت شده نام الله قیومه اسمش وصفی که از اون اشتقاق میشه وصف قیومیت دلالت داره اول بر کمال بینیازی الله جل شعنه یا ایوه الناس و انتم الفقراء الله انتم الفقراء شما همه فقیرید به درگاه الالهی محتاجید والله هو الغني الحميد الله اكبر نیاز و مستحق حمدش واسطایش بش بینیازه چنانچه رسول الله صلی الله در حدیث قدسی که از الله نقل میکنه الله میگوید لن تبلغ ضرری فتضرونی ولن تبلغ نفعی فتنفعونی نمیتونید نه به منزره راوسی بر رسولید و نه میتونی به من مفعاتی و سودی بر رسول الله همه محتاجشن همه نیازمندشن و او بینیاز دوام این واس دلالت داره بر عظمت قدرت الهی عظمت قدرت الهی هر نیازمندی در هر جای از دنیا الله صدایشون رو میشنه و استجابت میکنه نه انسش تنها نه جنش تنها حتی اون حیوانش کسی نیست که او را صدا بزند و الله جل او صدایش را نشنود و او را نبیند و دعایش را سجابد نکند این کمال چیه کمال قیومیت الهی و قدرتش بر خلقش بر آفرینشش همه محتاجن کوه و دشت و دمنش حیوان و انسش فرشتگان و عرش و کرسی الهی همه مخلوقان نیاز دارن که الله جل شنه با قدرت خودش با قیومیت خودش شون اونها را تدبیر بکنه افمن هو قائمون على كل نفسم بما کسبت فجعلو لله شرکا قل سموه الله اکبر الله مدبر تمامی مخلوقات افمن هو قائم على كل نفس هر نفسی که وجود داره الله امورش رو تدبیر میکنه قائم امره. همه مخلوقات روزی تک تک رو داره میرسونه خوابش کی بخوابه کی بیدار بشه چقدر بخوابه چقدر بیدار بشه همه امورش به در مادرش کی باشه فرزندش کی باشه و چی باشه همه امورش رو الله داره تدبیر میکنه الله میگه این الله با این عظمت و قیومیت آخرش شما برای شریک قرار میدید واسطه قرار میدید الله که تک تک مخلوقات رو میشنوه ولی اون مخلوق در حد خودش در توان خودش یکی یا دو نفر رو میشنوه شنیدن الله با شنیدن مخلوق قابل قیاس نیست ولی با این وجود این مخلوق نادان و غافل کی رو صدا میزنه اون مخلوق عاجز و غافل از اون قیوم غافله جایی که دست بندگی به اون اللهی که صدای همه را در یک آن میشنوه و امورش رو در تنظیم و تدبیر میکنه به جایی که دست نیازمندی را به سی او بلند بکنه دست نیاز به مخلوق بلند میکنه که ناتوان و عاجزه افمن هو قائمون علی كل نفس به کسب و جعلوا لله شرکا، نهایت ظلمه که الله قیوم سماوات باشه الله قائمت به امور و شعون تمامی ماها باشه بعد انسان بیاد در دعای خودش کسی را با الله شریک نسازه. ان الله السماوات والارض ان تزولا ولا انزاله ان امسكه ان أمسكهما من أحد من بعده. که شما نگه همه الله اگر الله رهاشون بکنه، اگر به برن، اگر بیفتن اگر از مسیر مدار خودشون این خارج بشن. این امسکه هم من احد من بعده کسی هست که جزء الله انا را نگه داره کسی هست جزء الله متعال که شؤون این کیهان و کهکشان را تدبیر میکنه اینه كان حليما غفورا الله حليما بودباره بودباره در مقابل گناهان و معصیت شما در مقابل این شرک شما و شما را هم میبخش اگر توبه بکنید جای دیگر قرآن الله و من آیاتی ان تقوم السماء ان تقوم السماء والارض بامره و من آاتیان تقوم السمع وال الرض پابرجایی این زمین و آسمان به امر علهیه مادامی که الله بخواهد اینها واقعاً اون لحظه ای که الله بخواهد نابود میشن. همه امور آسمان و زمین به دست اللهه. کسی جز الله نیست که امور اینها را تنظیم و تدبیر بکنه. چون کسی جز الله نیست که امور من و شما و آنچه که در آسمان و زمین هست. بچای خونه کسی جزء الله نیست که بچای خونه پس کسی جزء مستحق پرستش مستحق دعا مستحق نیایش مستحق ستایش نیست حمد مطلقاً از آن الله الحمد لله تيم السماوات والارض صلى الله علی محمد و آله